اللهم جميع که به شیعه بحث علم اجمالی شدن که با این بحث علم اجمالی به اصطلاح محقق قد در این اصول و شیف تمام شدشون اون در حصول شیعه تا قبل از مرحوم شیف مواقع سقرد به این طور سر و تنبیه ها تو جود بود مختصراتی بود نسبه که تا مفاتی قبل از شیف درکه بیگیم صورت که چندتا تا مسئله بشه حالا اینا هم به سؤال تنبیه های اما خب مرحوم ازداد به مسئله آوردن چندتا مطلب بشه در علم در محصه قرد این نبود حرست کنم که اون وقتی یکی از مسائلی که در این مرفس قد آیا اضافه فرمودن همین علم اجمالیه و حتی بودی شد که در اون که مرمون شیخ مرمون فرمودن دوبار از علم اجمالی بحث شده حالا عبارتاشون بگید خالی ازش روحام نیست صنع از در مرمون شیخ رساله های بیداکانهی نوشته بودن یک رساله حجیت و مذنه رساله برایت و اشتغال چون رساله حجیت و مذنه مقدمتن کردن و علم اون را بردن تو برایت و, و تو بحث اشتغال علم اعتماده دوبار بردن اینه که خالی نخالی مبادر خط داره این خوب آنه این مداری خط مثلا خود مرمو استاد در اینجا دیگر علم اجمالی گایی به لحاظ مقام سقوط تکلیف گایی به لحاظ مقام سقوط تکلیف لیکن مثلا هر دو رو مرمانستاد اینجا برده هم اگه که اجمال هم باست بحث مرحث اشتغال هم آمده حالتاً مناسب بود که اینجا مناسب باشه با سقوط تکلیف اونجا سقوط باست یا اکس کردن بحث سقوط رو بیشن اونجا بردن توی مرحث اشتغال حالا ما به اندازه هر مقامی که و از کتاب های موجودی که هست چرا رو دیگه حالا با مطلب مثلا انظره علمی جا به جایی به شما دیگه است عرض کردم که راجع به علم توضیحی رو که ما دیوست عرض کردیم در بحث گذشته راجع به تفسیر علم بود که مراز ما از علم اقیمالی چیه و علم اجمالی معلوم شد که با تفریف تخلیری با وجود تخلیری فرم علم اجمالی حقیقتش این است که به لحاظ علم هیچونه ابهام نداره به لحاظ معلوم ابهام داره انتباه شد معلوم خارجی یا به قول وقت از آقایان وقت به آن متعلقه علم اجمالید علم اجمالی نیست علم تصفیه متعلقش موجود. ولذا علم اجمالی هنگی بعد در علم تفسیری هیچ فرم نمکنن شما دیدین یک قطعی خون افتاد اون فرم نمکنن یه در بیدن روی یک انا افتاد این میشه علم تفسیری یه در در در دوست انا افتاد باشه علم اجمالی پس به لغاز دیدن یک قطع خون هیچ فرم نکرد به لغاز علم شما به وجود نجیس هیچ فرم نکرد ما دیدین قطعی خونی آمد اصابت کرد این دیگه, دیگه علم نیست نیستی تصفیلیه متعلق اجمال تفسیر داره یه متعلق واضحیز معین روشنگ تو این معناه علم اجمالی و چند تا معناه هم وقت کردیم که مراز, از مراز اصولی ها در حقیقت اینه و ادوها که در این که آه هست نه این که مثل واجب تحقیقی در واجب تحقیقی تحقیق شما به جامع خورده جامع در حد و هست این زیر واجب تحقیقی است. مثلا از این تحقیق خورده قواعد قواعد توی استقرارهاست توی آن سکین میکنند. مثلا کیفر کیفر در حد هست در واجب تحقیقی اون جامع در حد و هست. اینجا جامعی نیست در پردو باشه خوب در پردو کنه معلومه لغاز خود معلوم اولیتون تفصیل خوب یه قطعه کنید اینکه ابحام نداشتید جامعه جامعی داری متعلق هم یه عنوان انتظائی خوب در پردو کنید انابین انتظائی از انابین واقعی هستند عنوان اهده ما یعنی اونی که اصحابت خلقفه اهده ما این عمده با ما در واقع وجود ندرد این عنوان انتظاری انتظاری صرف اولیه شماست در خارج وجود ندرد چون در خارج جایی این حیلمت است این اتفاق است این مید در خارج عنوان اهده ما نید. عنوان اهده ما رو برای شما درست کنیم اما در واجب تخیری جامعه در هر دو هست اون جامعه که کیفر باشه در هر دو هست یک در دوبار م نامی تشریری شده به واژه احتمالاً چون شما مجر مجر تغییر بوده مردم آن محاف اضه آزیا هم تاشیر زندگی که نواس پاس بشه هر با آزیات بشه با واجب یا تثیر اهلی ل و احلی هم. با اکرم آدم هم که تقصیر هریز من در بحث گزارشته اشاره کردم که مثل مردم زدار در تاثیر تخصیل واژه و هم اونجا اشاره کردن توضیح شدید بعد با آنجل در وقت توی وقت واجب تحکیری توضیح دادیم که حقیق این است که واجب شدید به تحکیری عقلیه دیگه من نمیخوام خیلی بسته واقعا دیگه خلق میشه و همه ما نحن و رو رو یاد کنیم به واجب تحکیری روشنه شد چرا چون در واجب تحکیری جامعه جامع هست جامعه امر واقعیست دو طرف هم به اینه هستن. مثلا است آموزش تیم نسکی سوم شهری نمایگر نه جامع تو هر دو هست این ملتی جامع تو هر دو اینجا جامع نیست یه عنوان انتظاریه یه عنوانی که شما درست کردید واقعیت نداره تکرار شما عنوان اعهدیم ما عنوان اعهدیم ما تو خارج ما نبودی یا اهل حاضره اشتا اهل حاضره اشتا تو خواهرش نمیدیم خب اون روست میکنیم اونمانه ذهنی شماست لذا و رو شما مید اهل اهل اما اون اهل ما بیرد این اهل اما اون اونجا با اینجا فرق میکنه از کلان احتمالا اگر از کرام مقدر نباشه محبوم نانی برای نوع تقریب فرض داره شهر محبوم نانیم اجله که ما نحن و فید و علمه اج شنگیشون از دردین هر بسید آزام کهی مختصر یه سر که می روشنه این که با ایشانه و این مجرد شاید تقریب باشه پس در قیمه اجمالی خوب دقیق رو کنی ابحامش کجاست ابحامش انتباهه در این دو طرف ابحامش اینه اما نسبت به خود اصل و هیچ نبیه ابحام نداره یه نکتی رو من اعرض کردم چون این نکته رو نظر من تأثیر د خاموش نبریدون نکته رو خوب در ذهن مبارکتون باشه اون نکته اینه که شما در حساب علم اجمالی یه دفعه میخواین رو اطراف حساب بکنید این یه جور معامله است یه دفعه میخواین رو اون تکیه حساب بکنه یه دفعه رو می موضوع میخواین حساب بکنید ببینید چون من دیدم که قطعی از خون یک از این جزء هستید این ذرف مرادی ذمه این ذرف مرادی ذمه یلا که اینجوری واقعاً محاسبه کنیم این, این ذرب ملاحظه با علم اجمالیشون ببین این ذرب ملاحظه دم این ذرب هم ملاحظه دم شبیه که اصلا مسئله استصحاب این ذرب دیروز با دم ملاحظه کرد نجس بود امون شک میفهمم پاک شده نه اساسا نجاست می کنه بیا من نجس گله در هستم نجاست پس شما وقتی میگید این ذرب نجس نجس این ظرف هم به خاطر تندید علم مایی این یک بحثه یه بحثی میدید نه من این ظرف این ظرف یکی بود اشتنابه این ظرف هم یکی بود اشتنابان. چرا؟ چون اون مقداری من این یک فکر خون افتاد این مقدار داره. میدارویی میتیارو این مقدار علم من اثبات می کنه این ملاقی جمعیم ما بگر کردیم این مقدار علم من تا دیدم کن آمد من, من می دونم از ملاقی خون این با اشتناک این تقریب با نکته رو در پس بکنم این بحثی که اینشالله خواهد آمد که با خروج از محل اطلاع علم اجمالی منجز نیست نکته شمینه شما می‌دونید ظرفی یعنی داریم پیدا که این ظرف زرد دو تا زرد داریم یک زرد مثلا حسن داریم که تفریشش ما تو قوم اعلی مثلا. یک زیده نه مثلا حسین اون شو یه فارسی آب می‌غواسن. ولایاً محل اختلاف یکی از این دو زرف نجسته یا این ظرفی که الان آل من اعتراض دارم که آب آبو یا زردون زرد تو این این یقصیش رو خوب به خط بکنه این که میگن علم اجمالی من اجزت نیست اون نقطه خندیش اینجاست که اینجا, اینجا نمیزن علم اجمالی رو به لحاظ اطراف بیدن اگر علم اجمالی به لحاظ اطراف بود خوش از محل سلا زرم هم میخن. چون من میزنیم یا این زرمی که بقابل من نجستی اون زرمی که آفریقا برای این بهت قواهات و علم اجمالی این زرم میشه نجست اون اما آنانه گفتن نه ما از آن حکم آمدیم نه از موضوع حکم یعنی یک جبال اجتناب این ذرهی کردن جاید یک اون ذرهی از مرد اطلاق خاله جانب یک جبال اجتنابی نداره جوی اجتناب نداره نکته نداره به اجتنابی یا فرص ذره شد زیده حسن که آن مقابل من توش هست و زیده یک من اون افتلاع افتلاع من لذا این سر این که آنون آمدن گفتن علم اجمالی با خروج از محل افتلاع منجز نیست نکرش دینه شما به موضوع بزنید یا به حکم بزنید اگر به حکم زدید منجز نیست چرا؟ چون معنی تنگیز علم اجمالی نه. این که این حکم علاقه به تقویه باشه اون کنید حکم علا کل تقدیر باشه اما در اینجا حکم علا کل تقدیر نیست چون اگه این ظلم موجود باشه حکم از اگه اون ظلم باشه اصلا حکم نیست که ظلم نیست حکم نیست رو شد ست نقطه پس خود یک قبل مثلا در مسئله ملاقی من این مثالا دیگو ذهر تو مسئله ملاقی اگر با یکی از این رو انا ملاقات کرد آنگل ملاقات با عهد الاسراف منجز نیست چقدر منجز نیست چقدر اون نکتش همینه اگر گفتیم کلوان اگر ملاقی نجز مثل استثاب مثلا اگر شما این دیوز نجز بوده بود استثاب نجاستر این دست تربیش روزه میم دستونه اما با علم اجمالی دیگه یا این یا اون دست تربیش روزه میم دستونه جز این چه تربیش روزه نکتش خجاز روکیه فرمی و اصولیش چرا با استصحاب اگر درست نده این نجس میشه اما با علم اجمالی نمیشه نقطه کنال روشن شده کاملا مرزن چون یه علم اجمالی تو موضوع تصرف نمیکنه؟ علم اجمالی تو حب تصرف میکنه اما استصحاب تو موضوع تصرف میکنه این فرق اصلاسی استصحاب میگه این دیروز نجس بود؟ اروزا نجس علم اجمالی این نه علم اجمالی این یزه قلی اجتناب بوده یزه قلی با چیزی که یزه قلی اجتناب که نه قسمه <تصفح> اگر علم اجمالی بود این نه قسمه ملابات بπάو ما اما علم اجمالی نیم روشن شد مرد پس محل بست نقطه يعصاتی در دقیقه علم اجمالی به نظر این آقایا اینجاست که ما در علم اجمالی روی رو حکم نه روی موضوع این آثار فرق بینه و نذاب در زبان آزم مشهور شده که استثاب رو گفتن اصل مهرز احتیاط رو گفتن اصل دیگه مهرز ما شدید تند، تندیفیش هم دادیم یک تکرارش که کلانی کلاسش ارض کردیم هر اصلی که منقه موضوع باشه میشه مهرز هر اصلی که ناظر به حکم باشه میشه به مهرز و این میاد رو کاملا گفتیم حتی در مقام اثبات هم راهش رو شما یاد دادیم کسی میگه خدمت ما میگه من گوش شنیدم از بازار چرا من میگه بخور ببینید اگر ما فرض بکنم بخور بی میگم اصله غیر موه است فر امام نطرفون گفتم گوشش خوب بخور دوباره اونم اما اگه ما فرض میگه از مسلمان نخرید که از بازار مسلمان نخرید تا اینجوری فرموز میفرم امام مخاطر یک این مزرکاست این دو ها باهم فرقشا با یه دفع امام میفرموز بخور این میشه از به رفه یه دفع امام میفرموز از دست مسلمان خریدی این میشه از رفه می مخره یعنی امام مخاطر بس این مزرکاست شما ایسا نیش یکی در هر قاضی فرام و تشاوز در مورد تجاوز یه رسام به داره 5000 دلار میسناسه ما در فرضیه شک کردم رو انجام بده نه من فرضیه صدا بده چی در مورد داره که بلاغ در تو رکو کو انجام بدی اگه گفت بلاغ در میشه از تو موزه اگه گفت اینو به میشه مش شرط به ما خیلی ویریشن بلان کلمات اولانی که باه وسیله ماله ما خیلی راحت برای تو می یاره چرا سر اساسی مقلمشی یک نقطه بود اصول عملی یه نوع تنزیل هم یه نوع هم. در تنزیل و تعبود شما که حالات و مختلف رو ببینید که بدا اون بینش اگر تعبود قرار دادید که اون دیدنی که دارید این تعبود ها فهم میکنن چون این بحث های پوکوی و, و قانونیست که خیلی لطیفه به این صورت درست نشده پس فر توضیحاتش سابقا عرض کردید در, در همین گوش ممکن است امام بفرماید تو که در قصاب کانون نبودی رو بیمشت رو سرگاریدن تا امام نگفتن اصطحاب عدم تسکی امام ممکن است تا از دست مسلمان خریدی اونجا لحاظ اصف مناش این نه دیگه لحاظه تا امام فرمود تا از دست مسلمان خریدی اینه از سوق مسلمان نهی تسکیه تا امام فرمود بگر یعنی اصل خیلی مهرد اصلا نه تذکیر نگاه کرده دو دو. نقطه فنی خیلی دید. زرافته و انصافا این کارهای اصولی که به شده خیلی معثل نه سنیات و نیان تو عصولشون دارن نه شیعه علمان شیعه قدیم هم دارن خیلی زخماس زیاد در این جرتی شد از این مبانی و اصولی که بسیار به است. این صحبت اینه در علم اجماعی شما چه کار چ میگه خود واحده مجلس و غلادیه. نه شرعیا. بلاقدرت البته تجاوز رو اغلاوی میدونه اما نمیشه نمیخواد. طرز تصوری که برای اغلام دارن که ندارن. اما مغنشه. شما میتونید با بچه‌تون این کارو بکنید. اون قانون هر قانونگو سر هر کسی که شما دست رو کنید قانونگو این حق داره چهرا نقطه قانع میشه نقطه قانع شما چی رها کردی تیک اون رهاش گامیشه حالا مختلف داره میگین چه وا حالت مختلف تون جالب در غیر مورث مثلا نیاز ما وجود نداره فقط یک قضیه در مورث هستش که نه بگم اصلا موضوع نگاه نکردی لحاظش اینه فقط غفت نگاه بخونه فقط غفت نگاه کرده نگاه نده نگمتو به شما مزکای تو مزکای بخور <تصفح> بله این حد که ادهه از علما این بحث محروف بحث مصورت هم همه میگه حالا که امام با بخور این مزکا حالا تو اصول ما یه تنگیه کردیم بخور مرحب این مزکا باشه این بحث محروف بحث مصوری ریشاش اینجا پشه این یک وقت نبوده مگر بخور یعنی مذاکره نمیگیم نمیشود ملاحظه نیست مگر بخور اما تنظیم تغذیه ندارند اوزان شد نخواهد پذیرید این روشی به عضله بحث از, از کردن روشی به احتمالی همچون که مربوط به استاد نوشتن مشاهده شدن نوشتن در بحث در وجود موفقیت گفته یعنی کل لحظه باترکن یا یعنی در لغوی ما مخاطب در قطعی یعنی یک کاره و یک دفعه بحث تازیبی که آیا این علت تامست به حکم عقل این شارع خلاف اینا نیتونه انجام بده یا نه عقل یک مقدار افتازات میکنه شارع میشونه تصرف بکنه این یا به فیلم تصرف کرده شاره این خلاصه یه بحثیت که در کلمات اینا حالا ما به جای این موافقه در قطعیه تا این که بحث بودشته ما یه تغییر دیگری کردیم خدمت آقاییم حاصلش این میشه در اساطیر علم اجمالی شبهه ای که در اساطیر علم اجمالی هست نه شبهه احتمالی که مسدوده احتمالی که بسطر آیا اصول تاریخی جاری میشن یا نمیشن سه احتمال اصلی حالا ببین تضاد واقعی یه یه یکی اینکه اصول تاریخی در کل اعراض جاری میشه اساسه تاره در این اینا اساسه تاره که دو یا استثنا تاره هست، این اصل ترسیمی ملاحظه نیست یا استثنا تاره یا اساس دو اص... اصول ترسیمی اصلن چاره نمیشه نه فکر کن اساسه تاره چاره ندارد اصول در یک تاریخ نمیشه یک ترسیم مالک میشه دیگه نیست یکی شروع نکردی یکی شروع کرد اساسه بگو فاصله از این یکیش نابود این احتمال ها بی کرد. حالا آهام تحریدوی که کردن این تحریدی برنام در اون نشه تحریدو خود حالا اصول ترکیزی در جمعه اطراف جاری میشه این حشم شدشن به اصطلاح حرمت مخالفت به اصطلاح هجور محافظ قدری ببرشیم حرمت مخالفت قدری اصول ترکیزی در همه جاری میشه در هیچ ترابی جاری میشه این حجور محافظ قدری اصول ترکی وارض نیست اما مخالفه قطعی حرام است اصطلاحات شری مؤخر حالا مرحوم استاد بحثی کردند این وارد بحثی از صفحه 75 این جلدی که در مسواک و کتاب معیار بحثه ما برنامه‌ریزی کردیم که همین نوشتایشون دیدید جلسه بعد برای شب بحث مراجعه اول رو هر یک اول بحثی که ایشون کردند راجع به اینکه آیا مخالفه قطعی به تعبیر خودشون آیا جایز یانه یعنی قصود ترسیسی در هر دو طرف شاری بشه اصلا علم اجمالی منجز نبود اون اشکالیست که شده اینجا می فوندارند ایشون و مقوم ناینی هم دارند تو این تقریبی که تراز من ناینیشون از دنی اصدادشون نهد یعنی اونجا هم آمده خلاصش اینه که سر تأبیر آنه ایشون میگم بعد خدا می تعبیر رو جا بجنم سر این که میشه قصود رو در سرف جاری کرد این از که ما یک عنوان خاصی نداریم حاکمی که در اینجا داریم حقل ما باب اطاعت و انتصال یعنی انتصال که اطاعت به اصیان باشه چون حاکم حقله ما فقط دنبال حکم حقل هستیم ارداله من سابقا توضیح بیشته دارم اشون چون توضیح ندارم ما از کردیم اونی که موضوع احکام این مطلب ایشان اما به توضیح بنده خود مطلب ایشان من توضیح بیشتری از اونی که موضوع از برای احکام جزائی هر کسی که این کار رو کنه زمینان داره مثلا کلاخ داره این احکام جزا. موضوع احکام جزائی از کردن دو جوره در حوامی به طور کلی اخصاص به شرگردن یک جور اون تابع واقع میاد واقع نگاه میکنه شما میشون اگر قادم گذرستیم برای در باشه میاد واقع نگاه میکنه یه نقصی تو واقع پیدا شد میگه آشوانی جبران بکن مثلا بابدیات دیار این طور دیار. تو باب لازم نیست که امسان بنابه بکن یکی سرکالو پشتون افتابو یه انسان پای خوابید مو با دیار شو بدید ترسیل سنگ انگی به هوا خود به شیشه ایدی شو کن باید به اصطلاق جبران شو بکنه باید به اصطلاق بدنشی بده این بگرم بسمی بشن زمان باب زمان دیگه اینا تو شابه نفس واقعی هست شما اگه یک نسیجات کردون ما قبول بگرین شیشه شون دیگه شیشه بدی که شیشه گوشی بذارید پول باز بگذاری اون نفس باید جبران بشه در این چیزا قصد و ارادیو و اشیاء اینا نمیخوام بلده شما مخاب باشد خواب بود خرجش افتادی که بموت بود غیره قول ما شما علاقم؟ چی نیست این چون واقع این دنبال نفس جبران واقعی ده اما در سنش دوم که رو من ندرس کردم شما دنبال عنوان ایسیان و تمروز بر آنونی. خوبه مخالفت هم معصر نیست نه اینکه این جذاب و کیفر باز بشه بر مخالفت نظام نه پس اون یک کسی از شراب نظر شد و از پولیس گرفتش و خوشتن نیکی نیزی با حقیق بکرد شاده بزنیدشو شما تمروز بر نظام مخالفت کردی رد کنید اما تمرده بر نظام نکردید پس شما بدونید که این افکام جزائی وقتی بار میشه که شما متمرده بر نظام باشید عنوان اسیان عنوان تمرده بر نظام اگر این باشه شرط تمرده بر نظام این است که شما بدانید این عملی که انجام میدید با این عمل دارید تمرده بر نظام میکنید این مشکل کارید خب شما دو تا انا هستید و شما الان این انا رو سر می کشید می آیا شما تمروزه بر نظام کردید؟ مگه نا معلوم می شما این نمی شما این شما مشکوه و مشکوه میخواه ها بل مثالی ذکر تو به نصول حکم الواقع به نصول حکم تکلیف و لاسه بل حکم الواقع نسیشی عنوان ال نجد الوضوع بالماع نظلای علمان نومان نجد عنوان تکلیف ماشو. ماشو. و لاسه بل حکم رابع نفسشی اشاره کن دقیق پرنده هست بنابراین شما باید عنوان چی پیدا بکنید تمرد بر نظام. درست شما یکی از این دو انا رو سر میگه آیا شما تمرده بر نظام بذاری؟ احتمالا نجیس خوش شد احتمالا اون یکی باشه احتمال در اون یکی باشه شما عنوان تمرده بر نظام با سرکیده نهان پیدا نشده و ما که تا شما عنوان تمرده بر نظام با اونی که دیگر پیدا نشده وقتی اون ها سر میشه و اونی که از محل تورا خواهد شده. خورده شده اونی که تکلیف نداره که یعنی شما این رازی سعالی کودی آزوی تحقیل آزوی کودی بخونید از چیش این تعاویر منم بکار نهبه مراد ایشان و مرمون و دیگران اینه شما با علم اجمالی تمه بر نظام براتون پیدا نمیشه یا به عبارت واضح تلید. جهل تفصیلی مانه از صدق و انوانه اسیانه چون در علم اجمالی شما یک به بله ieقیمار دارید که میدونی یک ای نجیس یک جهل تفسیری هم داریم. این به نفسه نجیس باشی که پیار این به نفسه. این یک به نفسه باشه معلومی شما جهل تفسیری دارید. علم اجمالی جهل تفسیری به کل کلو طرفه او بود جهل تفسیری دارین به این جهل تفسیری مانع صدق حسیان تمرد این یه راه، حالا تعبیر ایشان به تعبیر ایشان حالا جواب ایشان من این خود اصل مطلب رو با جواب توضیح میدم <تصفح> از جهل به قانون مسئولیت نیست مرادش نه هم اون استداریست که ما داریم ما هم در قصور اون چیز دیگه میگیم میگیم عدلی که توش جهل هست این سبا فرمومتی اون جهل قصوری رو نمیگیره جهل تقصیر رو نمیگیره جهل تقصیری شاملش میشه اون مسئولیت مراد مقام انتصاله اما یه چیز دیگه هم ما داریم اشتراک تکالیف بین و جاهد. این احتمالا قوانین نشون خوب مطرحه دل لحاظ مقام جعل حرفی میکنه دل لحاظ مقام انتثار اگر جعلش تقصیری بود بازم هم مسئوله اگر جعلش واقعا قصوری بود نمیگه مسئولیت یعنی تک... بین به این معنی تکلیف هست نهی اینکه تکلیف برداشته اگر اگه مرتش از مسئولیت تکلیف تکلیف هست چه حکم جزایی برداشته میشه این شبهه, شبهه. جواب مرموهای خوبی فرموندن نه ایشون فرموندن که مخالفت به عنوان اصیان بر وصول تکلیفه همین که تکلیف به مکلف رسید این دیگه مخالفتش صحیح و همین که مکلف این پیدا کرد یک قصر نجسته اینجا پیدا شد تکلیف کافیه برای وصول کافیه به تقریبیه ما به دنبال وصول تکلیفیم این جواب ایشان و به مقدار این علم پیدا کرد این مطلب پیدا میشه ارز کنم که حالا من یه تقریب دیگری برای این بحث رو کنم من ارز کنم همیشه خدمت مون. در در های علمی زبایی های بحث به نظر ما مهمه مثلا ایشون درباره اینکه این که این علم اهمالی منجز نیست رفتن از باب اسیان، از باب پسر به اصطلاف مخالفت که کرده. ما چرا از اونجا بریم؟ خب از خود و خود مسئله پتیف حساب کنیم. ما یه تقسیم بندی حدو کردیم که را مران که در تکاریف یک مقام جعل داریم سه تا قبل از جعب داریم مبادی جعل. جعل نمی کنیم که توضیح داریم در این اصطلاح ما اینجور گفتیم بعد از مقام جعب یک مقام ابلاغ داریم که در ورآن از سروش انزال لعنزه رکن به که اصطلاح ما در اصول ارسال رسول و انزال این یک مقام بعد از از آزمسو بعد از نیشان توضیح شده بعد از از از آزمسو مقام خیلی خب این وقت خیلی میشه با ابلاغ دو یعنی اول جعله بعد ابلاغ ارسال رسول و انزال کتب، این از از از سه مرحله تنجزه تنجز یعنی تکلیف بیاد با عقل رابطه علمی پیدا بکنه که متلط درست ایشون تعبیر به وصول کرده خواهم فرد خودم با ایشان. ما تأبیر به تنجد کردیم ایشون تعبیر به وصول ما تعبیر به مرحله آخر هم مرحله امتصاله تو مرحله امتصال یا انجام میده اطاعته یا نمیده اصیامه این یک تکیف طبیبی که الان ما به جایی که بیم از راه اصیام خود این مرحله را بررسی میکنیم ما از این مرحله یعنی مسئله تنجزی که از یعنی اساس اصول فرق همین تنجزه اصلا اصول فرق برای این مرحله نمیشه اساس اساسا از این مرحله ما بررسی این اینه که میگم بحث در اصول فرق از شاقی نهار کردم موضوع اصول فرق حجته البته اصلا ما مرحله دیگه هم که اصول بررسی نمیشه اما اساسی که الان برای اصول فرق متعارف شده هم مشکل دیمار هست که این انتباش تکلیف در ذهن متفکر است انتباش تکلیف فرض این انتباش تکلیف این تنجز میاره این انتباش تکلیف هم دو تاست. یکی صغرا یکی کبرا صغرا و کبرا خبر حرام است کبرا این خبر صغرا اونجا تنجز میشه این دو تا شد تنجز میشه در اصول به طور طبیعی تو صغرا بحث نمی کنم به طور طبیعی. چون میگن اصلا بیان نرواز صغرا و زیتای فقیدی نیست این توضیحاتش هم تابعا بودش این مهمت که را بود به طور طبیعی ما تو اصول تو کبرا بحث میکنم توی کبرا چی جوی بحث میکنیم نمیم اون صورت ذهنی و انهاد مختلفیش را حساب میکنیم از راهای مختلف آشای شما میگی آقا این تکلیف واجبه میگن از کجا گفتی فلان فقیه گفت سوال آیا رأی فقیه حجت میگن برای مقلدشه بله برای مشتری دیگه نه آقا این مطلب مثلا حرام شما از کجا گفتید من می‌بینم مثلا چه اینطوریه مضر میگن نه آقا این نمیشه اثبات حکم شرعی مجدد اینکه چه بی جهتیه حالا من که معارض باشه دقیقه ما میهنی دقیقه روشنش که ما چه اصول اصلا هادر اصلی اصول اینه اون صورت ذهنی رو بررسی میکنه مثلا این مطلب واضیه از کجا گفتی؟ شون در قرآن اف هم حالا که گفت اف من بر واضیه موشا دارم از کجا گفتی؟ خیلق خدا رو فرمون شابه هم امر سیقه افل سیقه افل دارد بروجود نه آجنش شوادی میس پس این تمام بحث و نگاه بکنید همه برگشتش اینه میاد اون صورت ذهنی شما رو خلاجی می کنن مثلا کنانچی واجبه چرا؟ من احتمال قوی می خب کی گفت این احتمال ترسیل داده؟ آیا تکلیف یا تندگی از به مجرد احتمال؟ ببینید و در اینجا آقا در سرعی کنم بحث عقلی من این از این بحث تمجز اغلایی البته یه اختلاف ما با اصولی نکینا اغلایی صرف گرفتن ما گفتیم شاره هم میسونی تسرف بکنه یه اختلاف من بایی بزرگ دفع اینا مثلا میگن ایل منجزه یه ای شاره هم تسرف میدونیم میگیم نه شاره هم تو کبرا شاره میتونی تسرف بگه از راه یا شما علم بگفت در ارزش ازش نزده اونا بگرد نمیشه حالا اون بحثه خودش میشه و نمیشه شما الان نمیخواد میشه روشن شد احتمال سوال آیا احتمال منجزه؟ از کردن به نظر اغلا اینطوره اگر احتمال باز باشه میگن منجز نیست مثلا من احتمال, احتمال نجز باشه این احتمال باز احتمال اگر بخصه باشه یا این یا اون میگن منجزه احتمال بسته اینشالله از کاری کنید احتمال بسته چه خیلی دایره وسیعه که اون نقطه واسه دایره شما رو حیر محضوبه اونجا میگه منجز میست پس در احتمال بسته منجز به احتمال محدود منجز میتونن پس در حمیقت اون نقطه ای رو که ما در اینجا داریم بخش می‌کنیم اینه اون نقطه اینه آیا احتمال بسته محدود منجزه؟ چی اصول؟ این چه فرقی دیگه نه، عادی احتمال قائل منجزه. باز خوشو ما بودی؟ این گفت: اگر احتمال بسته باشه و هدف ناحیه حفظ باشه بله منجزه. هدف ناحیه موضوع باشه نه منجزه. اگر شما میخواید تاثیر این احتمال رو تو ناحیه موضوع ببینی این خصوصا کلان عرف بده. چه راه دیگه وجودی؟ باشه. ما نمیخواید دنبال اون مرحله استیار و تمررود مرحله متأخر اجرا و تمررود. روشن شد؟ ما اصلا نمیخوایم مرحله ترج کار بکنیم. نه، مرحله اخیر رو در نظر بگیرید. مصی فنی روشن. آیا احتمال بسته در دایره محدود منجزه یانه؟ آرایی که از یک یک عده گفتن احتمال کلن منجزه اینه حق و تایش اینوی دیده اینه همه مناش همینه یک عده احتمال مطلقا منجز نیست باز باشه بسته باشه من این هم کسایی که میگن علم ایموله اصلا منجزی ای یک عده تفکیق خائلن به نظران همین تفکیقی روسته که این شما پرداره من این یعنی توابیل عوض بودم که این قابل تر به اصطلاح اجوه های علمی روی هم باشه نمیشه شما تو دانش را بگونه هم محره با حالا به شروعی پس بنابراین اصل بحث و اینجوری مثلا آیا احتمال منجز هست؟ یعنی کدام یکیش هست؟ کدام یکی نیم؟ تردان وقیه کلاه